13 هم. در کارهای کلیدیتان بهتر شوید این یکی از بهترین شگردهای مدیریت زمانه هرچه در کارهای مهمتون بهتر بشید وقت کمتری میبرید که اونها رو به همون خوبی و یا بهتر از قبل انجام بدید همین اقدام که در کارهای کلیدیتون خیلی خیلی خوب بشید میتونه کارایتون رو دو برابر کنه میتونید به طرز چشمگیری کمیت و کیفیت کاری که به انجام میرسونید رو اضافه کنید و تاثیر شگرفی بر درآمدتون داشته باشه این مثالیه که من در سمینارها میزنم. کسی که با روش بگرد و بزن تایپ میکنه در هر دقیقه حدود پنج تا هشت کلمه تایپ میکنه. اما همین شخص با کمی تمرین میتونه تایپ لمسی رو یاد بگیره. یک شخص با سی دقیقه تمرین در هر روز ظرف نود روز میتونه سرعت تایپش رو به طور متوسط به پنجاه تا هشتاد کلمه در دقیقه برسونه. حالا توجه کنید چه اتفاقی میفته کسی که پنج تا هشت کلمه در دقیقه می میکرد با بهتر شدن در یک کار کلیدی در این زمینه طی فقط سه ماه به جایی میرسه که حالا میتونه پنجاه تا هشتاد کلمه در دقیقه تایپ کنه این یک افزایش ده برابر در بازده و کارایی این شخص این مدته کارایی مهم شما هم میتونه همینطور باشه اگه شغلتون فروشندگی خودتون رو وقف این کنید که در مشتریابی ارزه، پیگیری و پایان رسوندن معامله خیلی خیلی خوب بشید. اگه در کار مدیریت هستید خودتون رو وقف این کنید که در انتخاب افراد مناسب، تفویض واضح کارها، نظارت درست و تبادل اطلاعات با افراد کلیدیتون خیلی خیلی خوب بشید. این هم یک سوال بسیار عالی که میتونید در دوران کاریتون از اون استفاده کنید. کدوم مهارته که اگه در خودتون ایجاد کنید و پیوسته به نحوه عالی به کار بگیرید بزرگترین تأثیر مثبت رو بر حرفتون میگذاره؟ این یکی از مهمترین سآلهیه که میتونید بپرسید و جواب بدید کدوم مهارته که میتونه در حرفتون بیشترین کمک رو به شما بکنه؟ کدوم مهارته که اگه در اون کاملا عالی باشید میتونه بزرگترین تأثیر رو بر درآمدتون بگذاره؟ اگه جواب این سوال رو نمیدونید برید از رئیستون بپرسید از همکارانتون بپرسید از همسرتون بپرسید از دوستان و مشتریانتون بپرسید به هر حال حتما باید جواب این سوال رو پیدا کنید بعد وقتی مهارت کلیدی رو شناسایی کردید اون رو بنویسید و براش مهلت تعیین کنید برای کسب این مهارت برنامه بریزید و بلافاصله اقدام کنید بعد هر روز کاری کنید که شما رو به سوی عالی شدن در اون چیزی پیش ببره که میدونید میتونه بیشترین کمک رو به شما بکنه همین یک اصل مدیریت زمان به تنهایی میتونه زندگیتون رو دگرگون بکنه